بسم الله الرحمن الرحیم درس اول کتاب ورقات ولی قبل از این که موضوع رو شروع کریم یه شعر سبیتی بسیار زیبایی وجود داره که برای هر فنی به درب میخوره میگه مبادی هر علمی ده دارست یعنی انسانی میخواد یه علمی رو بشناسه باید این ده چیزشو بشناسه ان مبادع كل علم عشرة مبادئ هر علم 10 تا الحد والموضوع ثم الثمره تعريفش موضوعش ثمرش ونسبة نسبة این علم در رابطه با علوم دیگر وفضله فضیلتش والواضع واضع وبنيانگذار اون علم والاسم الاستمداد حكم الشارع اسم و اسم اسم ون علم اس قلوبی استمداد میگیره حکم شارع حکم شارع در رابطه با اون علم جس مسائل و بالبعض اکتفا مسائلش مباحثی که ملتزم هست بر اون مسائل اون علم ومن من درال جمیع هذا هرکسی هر کسی که تمام این دهتا رو درک ده کرد شرفی فضیلتی گیر شده است خب این با توجه به همین شعر شما می‌بینید کلا کتب این 10 تا رو رعایت می‌کنه این کتاب هم همین اصول رو را رعایت کرده است هذه ورقات تستمل على معرفت فصول من اصول الفقه اینها برگه‌هایی هستند این برگه‌هایی هستند شامل می شوند شامل می شود بر شناخت فصلهایی از رسول فقه ورقات جمع موننس سالن هست با علف و جمع بسته شده است. سیبوه می از از جمعهای قلت هست جمع قلت اون جمعی هست که از سه تا ده رو شامل شود البته برای کسرت هم بکار می رود. میگه این کتاب برگهای چند هست شامل می شود بر شناخت فصلهایی از اصول فقه بله اسمش کتابه رو گفت اسم فن کتابم فصل فصل داریم باب داریم کتاب داریم مثلا کتاب صحیح البخاری خودش کتاب کتاب هست کتاب تحرات کتاب صلات کتاب صوم کتاب نمیدونم زکات کتاب جهاد الی آخر کتاب عامتر هست از باب و باب آمتر هست از فصل نویسندگان با توجه به حکمت و فلسفه هایی کتبشون رو فصل بندی و باب بندی و کتاب بندی می کند. می گویند تا تنفسی باشد و انگیزه ای برای تشویق خاننده کتاب و دیگر فلسفه ها کتاب هم شامله فاصله است از اصول فقه و ذلک مؤلف من جزئین مفردین و آن یعنی اصول فقه مؤلف اسم مفعول هست تشکیل شده است من جزئین مفردین از دو جزء مفرد بله اصول الفقه دوتا جزئند این کلمه مرکب اضافی هست اصول اضاف هست الفقه مضاف الهش هست ولی این که گفته مفردین از کدوم زاویه بوده چون چون ما دو تا مفرد داریم یه مفردی که در مقابلش مرکب میاد یه مفردی که در مقابلش مسنا و جمع میاد اینجا منظورش از مفرد اون مفردی است که در مقابلش مرکب هست نه اون مفردی که در مقابلش مسنا و جمع است چرا چون خود اصول الفقه اصول جمع اصله لذا اگر منظورش از مفرد اون مفردی بود که در مقابلش مصنع جمعی اومد دیگه نمیگفت از دو جوز مفرد پس میگه اصول فقه از دو جزء مفرد تشکیل شده یکیش اصول هست و یکیش فقه هر دو تا مفرد هست اصول نمرکبه و نفقه احدوها احدهما یکی از اون دو جز الاصول اصول هست و ثانی الفقه و دومی فقه هست پس موقعی که اومد این دوتا این یک کلمه رو نه البته لازه اسطلاحی که اسم یک فن هست موقعی که اومد از دو جزش مورد بررسی قرار داد، حالا میخواد این دو جزء رو تعریف کنه اصول گفتیم جمش اصل هست الان اصل رو میگه که اصل چه هست فالاصل ما یبنا علیه غیره اصل آن هست که بنا شود بر آن غیرش چیزی دیگه بر آن بناشه مانند فونداسیون اتاق که دیوار بنیش بر میشه پس میگن اصل اتاق و همین اصل در قرآن اومده است الم تارا کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها و فرعها فی السماء آیا ندیده ای مثالی زده شده است آیا ندیده چطور الله مسلی زده است کلمه ای پاک را مانند درختی پاک که اصل آن ثابت است ریشه آن ثابت است و فرع آن در آسمان شاخ و برگش در آسمان بله و خود اصل اصل اصطلاحی معانی مختلفی در کتب, در کتب شرعی معانی مختلفی داره این بسید به معنی دلیل میگه اصل این مسئله چه هست؟ یعنی دلیلش چه هست؟ به معنی قاعده هم کاربرد داره میگه این چیز برخلاف اصل هست برخلاف فلان قاعده هست یا در بحث قیاس ما اصل و داریم و معانی دیگر و ما یبنه علیه غيره فرق چون در مقابل اصل قرار داره هم تعریفش کرد چون تعرف الاشیاؤ بازدادها واضحتر تر میگرده فرع هست و الفرع فرآن هست که مایوبنا علا غیره و الفرع مایوبنا علا غیره فرع آن است که بنا میشود بر غیر از خودش سه دیوار که بر فونداسیون بدان بنا میشه و شاخ و های درخت که بر ریشش استوارو بنا شده بودند این شده از اصله و الفقه هو معرفت الاحکام شرعیه فقه شناخت احکام شرعی است معرفه شامل علم و میشه در عربی و احکام شرعی نه احکام عقلی و حسی و عادی پس فقه شناخت احکام شرعی التي این صفته صفت احكام و معرفت صفت معرفت هز والفقو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني معرفة التي طريقها الاجتهاد شناختي كشيبهان راهان اجتهاد هز باله فسئل شد از فصل اول كتاب معناه اصول فقه البته به اعتبار دو مفردش یعنی به اعتبار اصول و فقه خود اصول فقه از اعتبار اینکه یک علم یک فن مستقل هست تعریفش رو در فصل سوم خواهد آورد ولی فعلا به اعتبار جز،, جز یعنی اصول و فقه اومد تعریف کرد انشالله در فصل سوم اونجا تعریف اصول فقرو رو مفصل خواهیم خواند موفق و پیروز باشید